حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر بلک هوا دارته چون بلدی بخندی و چشم دل ببازم با اش دل ببندی اجما که دلم سبز دچیه توی دنیا سلام به همگی من رادیو شماره آقا چل تا برنامه دیگه با. وای, وای. بوره بریم خوب این خوبیر خوشیر سلامتیر چه خبرها چی کارا کنین همه چی ردیفه؟ خوب امیدوارم که خوب باشین این هفته اگر پیگیر بوده باشید میدونید که ما داریم در مورد آلودگی با هم حرف میزنیم موضوع این هفته همون آلودگیه و در مورد آلودگی هوا حرف زدیم آلودگی محیط زیست صحبت کردیم دیروز کلی. امروز میخوایم بریم سراغ دو تا از آلودگی های یک هم یعنی آلودگی صی و آلودگی بثری آلودگی هایی که گوش ها و چشمامون رو هدف قرار میدن و در عمق جان و روان آدم نفوظ میکنن پس همین اول برنامه یه سلام مخصوص می کنیم خدمت همه اون عزیزانی که تنها قطعه مورد علاقه شون در خودرو خودروشون تو ماشینشون بوق ماشینشونه و یک ارز ادبی هم داریم خدمت هميون فروشگاهی لوازم خودرویی که در جهت پاسخ به نیازهای بوغی ملت انواع و اقسام بوق‌ها رو در اشکال و قدرت‌های مختلف می روی می‌فروشن، نصب می‌کنن به امید خدا مردممون از بابت بوغی وقت کموکسری نداشته باشن بتونن به راحتی حال دیگه سوتی رو ایجاد کنن. یه سلام مخصوص هم داریم خدمت اون دوستانی که با به اهتزاز در آوردن لباسهای تازه شسته شدهشون شون، اما زیر و رو فرق میکنه. بر روی ها و بر لبه پنجرهها و حتی در مشاهات دیگه ساختمون به آبران و رهگذران و همسایه ها میفهمونن که توی این خونه چند نفر و با چه ابعادی دارن زندگی میکنن و با این کار خوب پایههای قلم روی هم به شکلی محکم میکنن. سلام میکنیم به همشون خوب باشید. گوش این برنامه امروز ما رو. طلافشی ببین منو دوستان واقعا ناراحت میشیم وقتی که میریم تو این مهمانی های اطراف تهران دوستان عزیزی که با هزینه زیادی که واسه یه مهمونی دور همی میکنن حداقل 10 مشروب باز میکنن تو هر مهمونی اون وقت میان اینا ظروف یک مصرف پلاستیکی استفاده میکنن خب شما که این همه هزینه میکنین مگه فرق ظروف یک بار مصرف پلاستیکی با نشاسته‌ای چقاده ما خودمون همیشه ظروف یک بار مصرف نشاسته‌ای استفاده میکنیم که اگرم ریختیم دور خیالمون راحت بشه جز طبیعت میشه بله به به به حال بله بله شما هم خوش می‌گذرونید دیگه در طبیعت. خیلی متشکرم. حالا سری بعدی شما برای اعتراض به این قضیه پلاکارد با خودت ببروش بنویس از خوردن الکلیجات در ظروف پلاستیکی معذوری. ببین چی میشه دیگه. بلکه اصلاح کردن مثلا به ظروف نشاسته‌ای رو آوردن. هر چی که میگذره بیشتر میگذره پس لرزه‌های این تسخیر سفارت عربستان بیشتر خودشونشون نشون میده. دیروز عربستان سفیر ایران رو از کشورش اخراج کرد و به طور کامل روابط دیپلماتیکش با تهران رو قطع کرد. امروز هم کشورهای بحرین و سودان برای حمایت از عربستان که سفارتش توی تهران مورد حمله قرار گرفته بود، همین کارو کردن. و میگن امارات هم قرار سطح روابطش با ایران رو کاهش بده. اینه که سنگی رو که یه اد به اصطلاح خود جوش انداختن توی چاه رو حالا باید صد تا عاقل جمع بشن بل که بتونن درش بیارن. حالا دیروز توی همین فضای قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران کلی تو فضاهای مجازی هم اتفاقات بامزه افتاد خوستن تو توییتر خیلی بچه ها خلاقیت به خرج دادن. یه چند تا از دیروز دیروزم می‌خوام براتون بخونم. گفته که بعد از قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران هر نماز و دعایی که رو به قبله بخونیم سوابش میره تو اسپم بعد گفته با توجه به قطع روابط دیپلماتیک با عربستان از این به بعد دیگه قبله یعنی حلقه چشم مستت بعد دیگه یه نفر دیگه گفته قبله اول مسلمی که دست دشمن شماره یکمونه قبله دوم هم که افتاد دست شم... دشمن شماره دومون آقا اصلا تابلو قسمت نیست ما نماز بخونیم دیگه یکی دیگه گفته با قطع رابطی عربستان با ایران سهام سازمان حج و زیارت و قیمت فیش حج به پایین ترین سطح ممکن بعد از ساخته شدن خانه خدا توسط ابراهیم رسید بعد دیگه یکی دیگه گفته است بابا یکی رو اعدام کردن که کم مونده سرش جنگ بشه بعد من تا حالا اسمش هم بودم حس میکنم سهرگوریشی هم به حال خیلی های دیگه هست که به حال خلاقیت از خودشون نشون دادن و اما آقاشونم بعد از خب اعدام اون روحانی شیعه توی عربستان و حال بعد از اتفاقاتی که افتاد و سفارت رو گرفتن و آتیش زدن و اینا خب خیلی آمدن موزه گرفتن خیلی هم مخالف حکم اعدام بودن این کار محکوم کردن اما گفتن بعضی هم مثل معظمله و آقاشون برای خاندان سعودی یک پیشبینی خیلی خیلی, خیلی ترسناک کردن مدری سازان دولت سعودی تردید نکنن که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت پدرشون هم در میاره او, او, او پدرشون هم در میاره والا حالا ب... سعودی که حسابشون مشخصه با کارهای دور از عقلی که توی مدت انجام دادن نشون دادن خیلی عقل درست حسابی تو کلهشون نیست ولی راستش اگه به تاریخ نگاه کنید میبینید یه کشوری هست که یهو یه تصمیم گرفت یه سری از مخالفین خیلی ملایمش رو که سالها تو زندان بودن و اصلا زندان بود نه خیلی شیک بی سر صدا بره ادام کنه بروی خودشونم بروی خودشم نعیره حضرت آقا شما در جرین این ادامه ها هستید دیگه احتمالاً دیگه هستید دیگه همین سال 67 خودمونو میگم. بله همون ادام ها حال همشون انجام شد و فعلا که پدر ادام کنندگان سر جاشه در نایمده هنوز فعلا در نایمده حالا من نمیدونم بین ادامه مثلا سعودی با اعدام جمهوری اسلامی چه فرقیه که شما اینجوری میگی؟ البته بگم ما از در ادامه ی حالی هم به مدعیان حقوق بشر دادن و اینطور فرمودن این کسانی که مدعی حقوق بشرن چرا خط خون گرفتن و حرف نمیزنن؟ بله خیلی هم قشنگ حرف میزنن رهبر فرزانه مونن رهبر فرزانه مون که نه رهبر فرزانه شون رهبر فرزند جمهوری اسلامی بودن خیلی قشنگه وقتی حرف میزنن. البته بگم حرفشون درسته ها. عربستان با این وضع حقوق بشرش خب رئیس یکی از مهمترین پنل های حقوق بشر تو دنیا هم هست که خب این خودش خنده دار هستن. اما وقتی یه نگاهی به گوینده این حرفا بندازی میبینیم که به قول شاعر باید گفت داداش مرگ من یواش یعنی وقتی جمهوری اسلامی و پادشاهی عربستان درباره حقوق بشر حرف میزنن باید بیشتر ترسید تا اینجاستقبال کنه. بابا خب شما هم برید خیلی شیک و مجلسی آدم بکشید چلاخ بزنید زندان ها رو پر کنید دیگه من نمیدنم دست از سر حقوق بشر بردارید چی میخواید آخه تو رو خدا آقا دست از سر حقوق بشر بردارید از آدم خونش میره بالا شما به حقوق بشر حرف میزنید والا بزرگترین آلودگی که مردم ایران ایجاد کردن و بعدا باعث آلودگی های دیگه شد رای دادن در سال 57 بود که این آلودگی همچنان ادامه داره به قول معروف هر چی آدم میکاره همونه درو میکنه بله بله خیلی ممنونم حالا دیگه آبیه که ریخته و ریخته و سبویه یکی شکسته دیگه حالا با هم وضعیت باید چطور میشه کم کرد این آلودگی ها رو ممنون از تماس تو که اکثر میکروفون طلا اگه من فیسبوک کنم بزرگترین آلودی که الان در ایران هست ریختل امین اخوندا تو خیابونه خیلی آلودگی ایجاد میکنه امیدوارم این آلودگی زودتر برطرف بشه خدا نگه داره شهران و سؤل زایی میکنه بله نه دیگه با اون ده ده اخوندی که شما میگین تو خیابونه که بند خدا آلرژی چندانی نداره اون آلودگی اصلی رو میدونین کیا تولید میکنم نه تولید میکنن که اتفاقا هیچ وقت تو خیابونا و عمومی اصلا دیده نمیشن شوها نمیبینینشون اینا رو اکثرا باید تو تلویزیون رو این ورور ببینینشون بله حالا حالا یه چیز جالبه دیگه بگم دیروز سخنگوی نیروی انتظامی در مورد اینکه چرا نیروی انتظامی جلوی حمله به سفارت رو نگرفته یک چیزی فرمودن که عشق تو چشمای ما اصلا جمع شد خیلی ناراحت ایشون میره چی گفتن ایشون گفتن که مردم را خیلی وقتها نمیشود زد آخی آخی هلای من قربون اون قلب رعوفتون بشم این همون اطوفت اسلامیه که معظم له گفتا ببین باز بریم بگیم پلیس با خوشونت با مردم برخورد میکن به خدا عکس و فیلماش هم هست بریم ببینین یگان ویژه اینا که داشت دیوار میرفتن بالا آتیش میزن یگان ویژه اونجا واستاده بود تذکر میداد تو رو خدا از دیوار سفارت بالا نرین میوفتین خدای نکرده اوف میشین ها حتی ببین دیده شده چند بار کوکتل مولوتوف از دست مردم گرفتن این بنده های خود بردن یه جا قایم کردن آتیش بازی نکنن نسوزن اوف نشن ولی دیگه نشد دیگه نمیشد که مردم رو بگیرن بزنن که جان تو 88 چطور پس میشد مردم رو زد و کشتو بود ببین مسائل رو با هم قاطی نکنین دوستان عزیزان ببینید داریم در مورد مردم صحبت می نه یه دفت فتنه و عرازل و عباش و سرسپرده های غرب و, نه و اینجور چیزا حساب مردم حتی اگه سفارت بزنن از حساب اینا جداست است شدین مردم جمهوری اسلامی هر چی داره از همین مردمش داره دقیق بفرمایید یادتون نذاره قلبم نمیشه با آخرش اینجوری خراب شد اون رفت نقشه هم نقشه براب شد همه چی شد تموم پای قولاش نمون نموند به همین سادگی رفت گفت نمیانه دوون میگفت که میرم همینم شد نمیدونم که دقیبم شد هرچی میگفتن حقیقت شد بازم جدایی نصیبم شد سم جدایی نصیبم شد زیر حرف فایسندم من متم و همی مونده بوی ادش بن اسمم و مونده تو کاوهش برم خواهش کنم برگرد قلبم میتادت بزر مصنوعی باشه اصلا هر جوری باشه دیره هر پایزد و من ماتم و همی مونده یادش. بر و یادش بره اسمم از ذهنش رو کم مونده تو خوابش برم پاهش کنم برگر قلبم میخوادت بزر مصنوعی باشه و اما دوشنبه 14 دی ماه 1394 در برنامه 960 رادیو پاسوردا میخوایم بریم سراغ آلودگی صوتی بسری آلوده کردن چشم ها و گوش ها با دست های خودمان با میگه شماره 960 است بدانید و آگاه باشید که هر بوغ بیموردی که در خیابان میزنید مثل این است که یک تک آشغال از پنجره خودروی خود به بیرون پرتاب کرده باشید با این تفاوت که این زباله به جای افتادن بر سطح خیابان به داخل گوش مردم رفته و اعصاب و روانشان را آلوده میکند پس چنانچه از آنهایی هستید که در طول رانندگی دائما دستشان روی بوغه است همان از بدترین گانید. زاو جمعی از دست این راننده های دست به بوغ احساب براشون نمونده ها و مغز و موخ و ملاجشون از دست اینجور راننده ها منحدم شده های رادیو پس فرد دا آخ آی وای آی آه آ! آه منها آلیدگی خونه ایمان آلیدگی صوتیه اونم از وقت شروع میشه که مامان جان از خواب بیدار میشن میرن تو خواب خونه تفرک کلی هم زحمت میکشه ولی خب من نمیدن می بله. رو نمیدن چرا هر زرفی هم میخواد اون تحییه رو میخواد خوابلامه اون تحییه اون باش خواب اون که اون زیره زیره بلا برای نظر تقوتوک میکنه که دیگه خواب بر ما حروم میشه دیگه قاتیا هستم کاتیا خانوم من چ... الان چ... خب پاشوبارو خودت بشون رو ب والا به خدا ریزله شده این معام زله شدن این ماماناتون از دست شما چقدر بشورن بهابم بردارن بذارن چقدر جون دارن دیگه مامان کاتیو از فردا کله آش کنتراتی میده دست بچه ها دست به سیاسفیت میزن می بینم خودشون قابل میخوان بردارن از زیر بر میدارن یا از رو بر میدارن عوض تشکر رو دست در نکنه من کردم میگه حال دیگه سوی ایجاد میکنه خستگی به تدم میمونه وا. مشید. من جام. میخوام یه چیزی بگم خصوص آلودگی صوتی بسری اول از همه برادر من, من. اگه شما دو تا بچه چهار پک ساله داری م. که میخوان همش تو خونه فوتبال بازی کنن و بالا بلندی بازی کنن یا احیانا میخوان همش میزنار خوری جا به جا کنن به خدا تونشو یه همسه پایینی نباید پس بده یا خونه ازا طبقه اول بگی یا ببرشون پارک انرژیشون به تخلیه کنن رضا از اینستاگرام هستن رضا جان از اینستاگرام میگم اونا که خب اول و آخر نم نبردن دیگه حالا پارکی میگی ببرن خب نبردن و اعتمال داره نبرن بهترین کار میلیمی چیه خودت بری لحظ بچه هاشونو بگیری ببری پارک بازی کنن بعدش هم برشون گردونی دیگه راحت و آسوده هم خودت به با این بامونه میری پارک هوایی عوض میکنی همسای بالایی هم ازت راضی میشن هم وقتی برگشتی خونه میتونی راحت استراحت کنی چون بچه هم پخ میگیرن میخوابن بعد میگم بگو بعد من برای خیلی از شما پیش اومده گزارتون افتاده باشه به یه روستای آبادی دور افتاده البته همه ما ها وقتی به سی جای میرسیم رسیم سریع شروع میکنیم کش اومدن و اوای تازه روستا رو در یاابو کردن آین اینا اما یه چیزی که توی این جوجه ها خیلی صداش به خوبی شنیده میشه صدای سکوته بله سکوت هم صدا داره کی گفته صدا نداره ما تا این صدای دل و, و گوش ماه فقط وقتایی میشنوه صدای سکووت میگم که رو برداریم ببریم یه جای بکر و دور و بی هیاهو بنابراین این دفعه اگه گذارتون به یه همچی جای افتاد حتما این گوشنوازی سکوت رو امتحان کنید به خدا راست میگم حالا البته یه همچی سکوتی رو میتونه گاهی مثلا یه مامای گاوی قلدق مرغی قلوقوقوی قروزی عربده مشقاصمی که داره واسه کربلای اصغر از, از اون ور آبادی صدا میکنه اینا بشکنه ها این سکوتر رو اشکالی نداره اینا اینا این صدا هولدی زادی است که اینا نمیگم به اینا نمیگه آلودگی اینا فقط صدای خود طبیعت. صدای آلودگیزا از این موتور ماشینا و اتوبوسا و متروها و اون همه دم و دستگاهی که به وجود میاد که ما باش مثلا خودمون رو تو شهرها به قول خودمون مدرن کردیم و داریم مدرن زندگی می اون از اونجاها میاد. آتا اینم بگم الان شاید خیلیا بگن ما عاشق همون شلوغی و آلودگی صوتی شعرهاییم و اصلا نمیتونیم این همه سکوت و آرامش رو تحمل کنیم و اینو بله اینجوری هم ها. کم هم نیستن کسایی که برای فرار از صدای مثلا فریاد موتورها و ماشینها یه هدفون ورم دارن چپونن تو گوششون به چه گندگی به جای اون صداها موسیقی گوش میکنن تازه گزارش شده خیلی از اینا رادیو پسفرده هم دارن رو گوش میکنن شنیدیم دیگه میدونیم بله آما خودمون اصلا اصل آلودگی صوتی هستیم اینجا منطقه ها از نوع صوتی خنده ایش حالا حضرت خودمون که اینجوری فکر میکنی نمیدونیم شما چه جوری فکر میکنیم خیلی پاس داریزه بار اومدیم مادرم بله. همیشه بهمون یه دونه لیمو شیرین میداد برای مدرسه آب لیمو یه بار من این سرشکی می‌خواستم باز کنم آب بوش کنم سرش بله. اتفاقی به بجنگ بره تو سطل آشغال کمونه کرد افتاد زمین آخ. یه لحظه محض کردم و یه اپسیلون لیمو شیرینه دارم یا نه ناظممونو من صدا کرد برد بالا یه لنگه مم. پا یک صد وایسادم انقدر دیگه الان فوبیا دارم فکر کنم هیچ کارش نمی کار اشتباهی نمیکنم عاشقالم که اصلا آلو دیگه اصلا بله ببینین پس یعنی تنبیه بدنی اینجا جواب داد چقدر جالب ما نمی‌سی ما چند وقتی چقدر بعد گفتیم در مورد تنبیه های اینجوری توی مدارس یادتونه اگه واقعا مفید بوده که پس ما همینجا از همه مدیر ها و ناظم و معلمایی که دست به دارم دارن من اوزخویی میکنم آقا بزنین یه لنگه پا بچه‌ها رو ساعت ها نگه دارین گوشه گلاز اینا دیگه آقا زندگی خانمون متحول شد الان دیگه آشغال نمی‌ریزه دستتونم درد نکنه این هفته از شما خواستیم بهمون به بگین که کلن میونتون با آلودگی چجوریه و گفتیم میخوایم صادقانه بیرو در بایسی به چند تا از آلودگی های گندهی که تو زندگی ایجاد کردین و میکنین اعتراف کنین بلکه این بار گناهانتون سبکتر بشه و گفتم حالا میخواد آلودگی کردن هوا به خاطر استفاده از ماشینتون باشه دور دور کردن و رفت آمدهای غیر ضروریتون یا مثلا ایجاد آلودگی صوتی با زدن یا چه میدونم توی شبای چهارشنبه سوری با ترق ترکندن و یا مثلا ریختن زباله توی جوب آب یا در خونه همسایه یا تو طبیعت یا حتی همین این پهن کردن لباسایی زیر و رویی که اول برای هم گفتم توی بالکون و این ورون و روی بند و اینا که یه جور آلودگی بسری برای ره رو ایجاد میکنه گفتیم این هفته میخوایم به نقش خودتون تو این همه آلودگی که وجود داره اعتراف کنین زود باشین اعتراف کنین همه تون با هم آمور زیده بشین بار گناه سبک بشه منتظری ما ایمیل دادن به مردم بگید لطفا آدامس خودشون رو همیجوری نندازن جایی بیچاره پرنده ها میکنن قضاست میخورن دوچار خفرگی میشن گناه دارم قربونتون برم آنی از لوسانجلس ببین به فکر پرنده هست ببین؟ آفرید باریکالا آنی سلام فرش جام با تاوتی هوای این روزها بهشون پیشنهاد میکنم که شیر بنوشن چون شیر در واقع دشمن به داخل حواست امفا فاصله بعد از اون پیشنهاد بکنم آب بنوشن چون در واقع چون تو شیر وایتکس میریزن آب و نیترات داره این نیترات در واقع ضد اون وایتکس است قربانت امارای هستم از تهران میماری جان الان چی... <تصفح> خیلی پیچیده شد اون نیترات بعد نیست برای بدن برای اینکه نیترات رو دفع کنن نباید چیز دیگه ای بنوشن یا چیز... پیشنهاد چیزی سرکه ای چیزی مثلا بالاخره نیترات هم خب میگن زیادش خوب نیست دیگه حال ممنونم پیشنهادی بود دیگه پیشنهادی بود امار آی داد خیلی ممنون نیلا از مشهد ایمیل داده گفته آلودگی هوا یعنی دوش بگیری فس فس عطر 700 تومنی بزنی که بری سر کار از ماشین که پیاده شدی یه اتوبوس از کنار رد چ یه گاز بده از کل هیچلت که سیاه شده فقط چشاد دیدش. اینو نیلا از مشهد گفت. صفا توی فیسبوک گفته آقا چرا انقدر گ... گنده گنده کردین هوای تهران رو سیاه نمایی نکنید انقدر یه خورده خاکستری شده اونم از دور تازه شده تازه شد اونم از دور تازه شده یه روز معمولی در آبادان صفا هستم از آبادان <تص> یعنی آبادانیا تو آلودگی هوا هم کم نمیارن ها واقعا پرچم در همه حال بالاست دمتون ولی امیدواریم یه روز کل هوای پاچ بذارین باشه شهرهای دیگه آقا دیگه آلودگی چیه که آقا میخوای کم نری توش دیگه مریم صادقی توی فیسبوک گفته آلودگی هوا آلودگی صوتی آلودگی بصری آلودگی اخلاقی اینجا بیشتر محیط مرگ تا محیط زیست امروز رفتم تهران هوای تهران دیگه آلودگی نیست کسافتکاریه والا تو این آلودگی چیپس زیاد بخورید نه واسه چیپسش واسه هوای تمیز توش کلا <تصفح> <تصفح> یه سه چهار تا جوک و ازمه سوینار در مورد آلودگی همه رو یکازی کرده بود مریم یه جا به صورت یک پکیج برای ما نوشته بود تحویل مونداده بود دستشونم درد نکنه اینستاگرام اینستاگرامم موسی گفته فرشت جون ام آی دیگه آره موسی 2981 حمرم گفتم دیگه الان من فالوورات زیاد میشه. گفته فرشت جون اعتیاد داریم به آلودگی والا به خدا اگه نباشه ما چطوری نفس بکشیم ماخه اینا یه جورشه به آلودگی اعتیاد پیدا کردن آقا ماشین روشن کن آقا یا خانم حال من نمیدونم ماشین روشن کن شما تو پارکینگ در پنجران ببند ردیف دیگه هر روز دو ساعت این کار بکن تمومه سختیش مال همین چند روز اولشه آره باز ایشالای دودو دن برمیگرده به شهر میشه نفس کشید دیگه تازه دو روز اینجوری شده تمیز شده خسته نخور پسورداد رادیوفردا.com ایمیل ماست دو۴20 و دو و ماست در فیسبوک گوگل+ پلاس کلاد اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید به کانال تلگرامی ما میتونید بپیوندید و همینطور اپلیکیشن رادیو پسوردار اونهایی که، آیو استفاده میکنن میتونن روی گوشی ها روی آیپد هاشون داشته باشند. تلفن های پیامگیر ما دو سفت چار و دو یازده بیست و و سی و سه برای اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن دو سفت و بیست و بیست و و یک این زندگی بی تو ی سرابه هر قدر نزدیکش بشی دورتر میشه هر ثانیه که تو کنار من نباشی حال من از اینی که هزفتتر میشه عاشق نبودی تا بفهمی حال من رو اشق نبودی تا ببینی چی کشیدم صد بار تا مرز رسیدم ده رفتمم بازم به اون نقطه اولم رسیدم عاشق نبودی عاشقی قان عاشق همیشه واس عشقش عشق بی‌قرارم نگذره تو زندگی از هر که داره اما یه عاشق توی عشق کم نمیزونه عاشق نبودی عاشقی ای عالمی داره. آدم عاشق واس عشقش عشق بی‌قرارم نگذره تو زندگی از هر که داره اما یه عاشق توی عشق کم نمیزونه ما توی خبرها داشتیم پلیس فتا که می‌دونید خب حواسش به همه چی هست دیگه جدیدن این پلیس فتا که حواسش به همه چی هست جدیدن مرکز های پلیسی یا همون سامانه 110 خودشم راه اندازی کرده و از این به بعد به محض اینکه توی اینترنت مورد آزار و اذیت قرار گرفتین میتونین گوشی رو بردارین زنگ بزنین به سامانه 110 پلیس فتا تا سری تیم زبده مجازی به صفحه اون طرف مزاحم اعزام بشن حقش رو بذارن چف دستش جالب میشه فکر فکر کن این جبود پشت تپی رو که من بلاکش کرده بودم این قیافش چجور دوباره داره پیغام میده رفته یک کانت دیگه ساخته چقدم سیریشه چی نوشته عزیزم وبکم کم میدی ای مردشور تو ببرن بچه پرو پر ببز بنویسم برو مزاحم نشو یه دونام از این صورتک عصبانی نه سه تا میذارم آها اینم سند مریم چی نوشته حالا این وسط؟ دیوانه ای ای ای ای. چی میگه دوباره این پسره؟ ای بابا بس ببینم عصبانی که میشی خیلی خواستنی میشی برو بابا چی؟ چه پروه پر به تو چه چی تنمه بیشور چه تون به نفسی هم داره با اون ریختش الان تکلیفشو یه سری میکنم بذار الو. سامانه 110 پلیس فتا پاسخ قویه شماره یه 494 بفرمایید. سلام خسته نباشید. آقای پسر است دائم به من تو فیسبوک مسیج میده مزاحم میشه. آیدی یا اسمش جواد پشت تپیه. اسمش جوادپشتپیه. اسپلش اینجوری میشه. بله اجازه جواد میشه. که همون پشت تپیش هم میشه پی او ا اس اچ. نیازی نیست پیداش کردم. عکس پروفایلش همینه که پشت وانت نشسته داره هندونه میخوره. بله خودشه. چجور مزاهمت ایجاد کردن خانم؟ معلومه دیگه مزاحمت ناموسی م -م. خیلی ببخشیده همی پرسه چی تنته بله؟ چی تنته؟ بله خانم برو... الان برخورد میکنم یک لحظه اجازه بدید مرسی دستتون در نکنه شما 24 ساعت فرصت دارید این نکانت رو غیر فعال کنید در غیر آه. این صورت با هاتون برخورد میشه از طرف پلیس فتا خب پیغام ارسال شد خانم آخش حقش خیلی بی ای ای ای این که باز پیغام داد نوشته این گولاخه کیه به من پیغام داده مهم. میگه پلیس فتاس یا دوست پسرت؟ خانم شما جواب ندید اقعب بیستید بنده برخورد میکنم شما به جرم توهین به مامور قانون بازداشتید دستتون رو بذارید پشت سرتون و از جاتون تکون نخورید این هم سند شد وای چقدر هیجان انگیز اون آدرسش هم داریم بله خانم محترم اجازه بدید بله متهم از آمریکا کانکت شده ظاهرا شهر س... سان فرانسیسکو واقعا مطمئنی بله خانوم باید از طریق پلیس اینترپل پیگیری بشه وای همیشه میگفت بعد بیو با هم بریم سان فرانسیسکو من فکر کیا منظوره بعدی داره ببخشید میشه من هم پس بگیرم خانوم شما شما شکایتتون رو پاس نگیرید ما نمیتونیم کاری بکنیم فقط میتونید بلاکش کنیم. نه بابا چی رو بلاکش کنم بله. مرسی اصلا فراموش کنید خدافظ به هر حال توصیه پلیس فتا به شما اینه که نور بابا توصییتو بشه درد من میخوره چیکار کنم حالا آخه من از کجا باید می دونستم این با این اسم و قیافه واقعا سان زندگی می کنه کیوت <تصفيق> کیوته بذارم حسیش بدم تفلی زهره ترک شد عزیزم هستی الو جواب بده دیگه میخوای بدونی واقعا چی تنمه الان قهر کرده فکر کنم و کم بدم الو برنامه یای چند پاسور داشت چن تلایک دره بگو چی گفت یهو فدامو میگفتم که مارک بعد کل فیسبوک و به نامم ده نه بجویدم آیدی من چیز آیدی من یاداش کن سی ای فیسبوک همه ملت این روزا سرشون تو شد اکبر میکروفون تلا اکبر میکروفون تلایی بدون فاصله ها فاصله نده سلام فرچه جان، اشرف هستم از جده عربستان سه چهار روزه آمدم استانبول و شوق فلم دیدن سر ما زد و از زیر تأثیری تبلیغات کامران رفتیم و رفتم فیلم ستار واردس را نگاه بکنیم خدا نشانت نده، با دوست ما داخل سینما و دوست ما گفت که بابا این که مثل بازی بچه ها میمانه گفتم صبر کن بعدش خوب میشه با تأصف نیم ساعت بعد اینا را دوست ما بیدار کردیم گفتم برم نگه. این حیف شد این استار کجا و آواتار کجا دوستت دارم شما و هم همکاران بله بله جدی عربستان تماس گرفتن خیلی مو... این نشون میده روابط ایران عربستان روی روابط ما باشه نوندهامون خدا روشه شکر اثر نذاشت و از عربستان تماس گرفتن استار وورز و من هنوز خودم که قسمت نشده ببینم ندیدم ولی خب کلا فنای خودشو داره دیگه این استار وورز بعد باز باشی تا ارتباط بگیری باش الان از کامرالم میپرسم دلنگرانی ما از آدمی آدمیست که میخواد به چشم خود شاهد پیروزی باشد کامران ملکموتیی سلام سلام فرشو جان سلام همه دیدی ستار دیدی خودت کامران ندیدی من نه منوز. حسن عشق استار وارز من نیستی من هم چون نیستم خودم خیلی علاقه بس ندیدم یعنی این سری آخریش هم ندیدم میبینم ولی ندیدم ولی خیلی عاشق داره ها نه من هم ندیدم بله بله کلی فروش کرده الان دیگه آواتار هم زده جلو دیگه همونطور که پیش بینی میشد مثلا من هنوز ندیدم خوش هنوز به حال فنای ندیدم. استار وارز الان میریم میبینیم ببینیم که چی میشه خب بریم ببینیم چه خبرها در دنیای هنر وال فچه ایرانیایی نازنین یه بار دیگه افتخار آفرین شدن چطور جایزه چیز گرفتیم؟ جایزه که نامبرال ماجرای حمله به سفارت عربستان تو تهران و کنسولگری عربستان تو مشهد اونم تو شب تولد جلال اونم فکر شما آره رانا حربی خاننده و حربی خواننده و بازیگر لبنانی تو توییت خودش به شوخی نوشت که ای مرد ایرانی که پرچم عربستان تو مشهد از سردر کنسولگری پایین کشیدی پیدا میکنن بااد ازدواج می‌کنم خب الان چی شد سر سفر عقدن الان پیداش کرد بالاخره <تصفيق> به ما نه مثلا همینه هنوز چنداعت نگذشته بود که خیلی ایرانی ها طال انجام خیلی رو رسون این دو نفر به هم دست به کار شدن کاری کردند که رنا هربی دوباره توی کرد خدای من اوضاع از کنترل خارج شده صنداز پیبان داره موجه میشه شوخی کردن ایرانی ها جمعبه ندارن اصلا. آقا شوخی کرده آقایون ایرانیش آبی خیال ازجب عکس عمل استاد مشاایخی چیزی بوده بر اسقایی قدم پیش نذاشتن آ مشاخی هنوز نه اما بچه ها سامی را حوالی سفارت روسیه دیدن که با دبه بنزین در خان قدم زدن میدونه که علاقمنده شدید فاطمه گله اینه که گفته از این روابط چیز بکنی استفاده دید. ببرم <تصفيق> بگذاریم دیگه چه خبر کامران از داخل ایران خبرهای داخل ایران آخر شبای آخر شب به بخت ایران دیشب البته لیست 22 فیلم از صرف هییت انتخاب فیلم جشواده فیلم وجه منتشر شد از ختنیکی ها بگیر بیا تا دهنمکی هستن یه سری فیلم هم کنار گشته شدن از یول دراکولای اران یکی دوزی آشگانه های نیشاده از هویان یرانی امکت محمد رحمانیان و ی تیمخانه ایران،, ایران که ساخته عبرگن طالبی حال دو بود و اسخر فرهادی وهنگید نمت هم که قرار بود باشن فیلم برداریششون همون نشده و حذف شده. بسیار خوب. از موسیقی چه خبر؟ والله چند روز پیششون یه آلبوم جدید به بازار اومده به اسم آبی به خوانندگی گرشا رضایی که یکی از پرفروش‌های هفته پیش بوده بیننده های تلویزیون قبلا تیتراژ پایانی سریال دولت مختاری رو با صدای رضایی حتما شنیدند. بسیار خوب ما میریم به اتفاق بخش از این کار با صدای گرشا رضایی میشنویم با خداحافظی می‌کنیم تا فردا. فرداخه من دنیا من تو هستی تو همه چیز و همه کسم آبی رنگ تموم دنیا لحظه که به تو میرسم مثل یه نقاشییه خیالت مثل شعر نو میمونونه مثل از شب یا سبزی بارونبحه هایاش غونست. از خیمم با تو جندگی قشنگه قلبم با با سلام 21.30 دوشنبه شب را ضمن اظهار خورسندی از اینکه طی روز جاری تا این ساعت هنوز کسی در کشورمان به سفارتخانه خانه نکرده با مروری بر سرخط مهمترین خبر ها دو ساعت گذشته آغاز می از اظهار نظر سخنگوی وزارت بهداشت مبنی بر کمبود صد هزار پرستار در سیستم درمانی کشور، و نظر جمعی از اخشار بیمارستان بروه کشور که با سخت نگیرین ما این همه درد و مرض داریم تحمل میکنیم این روش ملزم شدن حسن خمینی برای شرکت در آزمون خبرگان و نظر کارشناسان که اتبالا همینجوری پیش بره حسن آقا باید ماهینه فنی آزمایش ایجز و اعتیادم بده تای تا وقت نره دامن خبرگانو رو لکهدار کنیم و ناپدید شدن تعدادی از کارمندان و یک دولت چین و تعجب نوزران از اینکه که بچه های اطلاعات سپای چین از اطلاعات سپای ایران هم در ناپدید کردن مخالفین بهتر عمل می کنند مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروح خبرها با همکابر خوشالهانم بلبل با سلام، پزشکی قانونی استان تهران از مراجعی 70840 نفر از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه سال جاری به دلیل آسیبهای ناشی از نزده به مراکز پزشکی قانونی این استان خبر داد در همین رابطه یکی از کارشناسان امور آسیب کشور به خبرنگار ما گفت این آمار نشان می که مردم کشورمان هنوز در زمینه زدن زروه های مفید و حرفهی در هنگام دعوا نیاز به آموزش دارند و در ادامه مردم کشورمان را به استفاده بیشتر از کل تو صورت لگد از بغل و مشت توی الو در هنگام دعوا فراخواند و همچنین به هموطنان عزیزمان توصیه کرد در صورت استفاده از تیزی در دعوا بیشتر از ضربات نوک تیزی در ناحیه کمر استفاده کنند تا در دردسر زیادی برایشان ایجاد نشود ای آقای میکروفون حالا اینا چیه دیگه چی چیه خبر دیگه بول بول چه شدی بابا این آقا داره رسما تبلیغ چاقوکشی میکنه چه حرفا یا اینا اشکالی نداره که ببین ما تو مملکتمون به چاقوکش هم احتیاج داریم بول بول همه مشاغل از نظر رسانه محترمن اینو هیچ وقت ای بابا یعنی چین چی حرفا وله زیشه به خدای میشه من به خاطر خود میگم تو نگران نباش بول بول برو برو برو برو دکتر تلم میاد برو دیگه برو تموشت پایان مشروع اخبار شب خوش خدا آفر، خدا آفر. بله وای، از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشناسی مشکل گشایی برنامه یعنی برادر مشکل گشا هستیم تا مشکلات ما را گشاوی کنند. بله. خب برادر مشکل گشایی که از مشکلات این چند روزه ای کشور اعدام این حاجا قا تو عربستان و حمله به سفارت این کشور بوده. بله. شما درباره این حمله چه نظری دارید؟ بله، اگه میشه بنده بله. سلام علیکم که شنونده گون بکنم اگه حقوق ببخشید بفرمایید بفرمایید بفرما بشواسلام علیکم پس روش میفرمیدید اعرض کنم که خب طببیعتا ما این ادام حضرت حیت الله نم من رو دیگه کار دیگه کارونندایی نمیشه ک بلی خب در موردی حمله به سفارت بلده. عربستان چیبرا در مشکل کشه وزارت نظر خاصی نداره نه یعنی؟ خببلخره مش اینه که ادامهشان یک جنایت بزرگ و حرکتی برای ضد بشریت بود ای و ما به با همهال باید از این کنه ن... اعدامها و الامه ای... کنیم بشه. مشکل جان ببین مثل که نگرفتی سوال من ها اعدام رو که محکوم کرد. هیچ بله میگم نظر وزارت درباره حمله به سفارت و... آتش زدنشو شو اینا چیه اینا باید. مسئله آتش زدن مسئله خیلی مهمه که در هر صورت با محکومیت ادامه حضرت آیت الله نبر باید علم رهبری خیش را بر مسلمین جهان نشان بدیم و ثابت کنیم که ایران هیچ وقت از حق خود در این زمین نه کوتاه نمیاد و... مشکل قبلا کر بودی الان میسی که مختم تا برداشتام و بذار اصلا من سوالمو یه جور دیگه مطرح کنم بس... مشکل اینایی که به سفارت حمله کردن از مرگ این حاجاغان نمیر ناراحت بودن دیگه. بله خب طبیعتاً بودن دیگه. مم. همه جهان الان در غم حضرت آیت الله و داره دارم دیگه. ولی خب یه آدم عکس الان از اینا هست که دارم با خنده و شادی از خودشون سلفی میگیرن جلوی سفارت رو در دیوارش اینا اینا واقعا ناراحتن مشکل یعنی؟ نه به لبخنده ها و خنده ها ظاهریه به ما سفارش شده که باید هشورت یک آخر را بر دل دشمنان گذاشت این عزیزان هم در حالی که دلشان خونه و در درون میگرید داره لبخند میزنن تا دشمنان خوشحال نباشد پس دلشون خونه اینا بله بله. خب پس شما داری تلویهن یعنی تایید میکنی حمله اینا به سفارت عربستان دیگه مشکل بله ببینید ادام این... حضرت آیت الله نمرد یک کار زشت و خلاف انسانیت بود که به هر حال روز دامن قابلین اون رو خواهد گرفت نه خیلی و... قبلنها کر می بس... شد الان دیگه نویز می بله. مشکل جان من تبریک میگم به شما روش جدید پیشوندن رو خیلی بله قشن بله من هم متقابلا تبریک میگم گم انشاء که در آینده نزدیک به بهترین درجات عالی نال شده بر براکات او ده خواهد شده. خب خد رو ششک فکر کنم مشکل دیگه خل شده رسم بله با تشکر از شما تاشبی دیگر و برنامه دیگر و مشکلی دی خدا نگه دار. خدا رو میگتاب نگه آقا یارو دیگه رد کرده رس من گفته باشم از هفته بعد دیگه مشکل بی مشکل این پسر خاال خودم ها بیکار میار اینجا جای کارشناس باش مشابه میکنم دیگه سگش هم می به این مشکل مشره کرده ما که برنامه اما یکی از رایج ترین انواع آلودگی صوتی همین بوغه که روی ماشینا کار گذاشتن گفتیم قبلا هم درسته که این بوغ در اصل برای اختار دادن و پرهیز از تصادفات ساخته شده ولی خب ما تو ایران هزاران استفاده دیگه هم برای این بوغ پیدا کردیم و اصولا بوغ تبدیل به ابزاری شده برای گفتگو بیان خواسته ها برون فکنی درد دل کردن همراهی شادی اعتراض ببین کلن ایرانی ایرانیه بوغش دیگه گفتن همیشه البته شما خودتون بهتر از من میدونین ولی خب بدون چند مدلش بریم با هم یه مروری بکنیم ها ببینید این بوغ که بوغ ساده است یعنی رابطه من رد اگه دوتایی باشه یعنی اینجوری باشه یعنی بیا بالا سوار شد اگه سه تایی باشه یعنی, باشه, یعنی, باشه, یعنی خیلی مخلصیم ولی چاق سلامتی و اینا خوب کارورد داره این جور بوغا اگه اما اینجوری باشه اوه اوه یعنی یکم چشدار دیگه میدونی این یعنی داداش یه طرفه داریم یه راه رو را ما هم را گرفتی اوه اگه خیلی زیاد چشدار باشه یعنی این شکلی آخه این خیلی بده این فوش ناجور و ایناست دیگه من نمیتونم اینجا بهش اشاره کنم معنیش چی میشه حالا اگه دوتا باشه اولی کوتا دومی نیمه کشدار باشه یعنی اینجوری؟ یعنی به یکی داری پیغام میدی که بیا دم ماشین دیگه حالا یا صاحب مغازه رو مثلا داری صدا میکنی حال نداری خودت پیاده شی یا مثلا رسیدی خونه میخوای یکی بیاد در پارکینگ و واسات وا یه سری بوقای ریتمیک هم داریم که حالا بر موارد خاص و مجالس و اینا استفاده میشه که اون الان بهش اشاره نمیکنیم کلا به فرهنگ واژگان بوقی ایرانی ها خیلی گسترده است برای خودش زبان کامل محسوب میشه که یزی بدین دیگه همینجا تمومش کنیم و بعدن ان توی فرصت دیگه مفصل بهش بپردازیم فریبورز غریب سلام سلام سلام به همگی فرشی جان فریبورز این بازداشته سوشا مکانی خیلی انگار بازتاب داشته درست فرشی تو بیشتر روزنامه ها و سایت های ورزشی امروز تو تاب بود خبر اومده که امروز قبل از ظهر سوشا مکانی رو به زندان اوین فرستادن به دلیل انتشار تصاویر نامتعارف که باعث ایجاد فحشا می شود عجب پوکودار شد که با فساد و فساد مشخص شد دیگه اینم از این مشکل که حل شد خب از مطبوعات ورزشی چه خبر اونا چی گفتن امروز چند تا تیتر جالب زده بودن فرقی روزنامه ورزشی در مورد زندانی شدن دروازهبان پرسپولیس تیتر خبر ورزشی با اشاره به دلیل بازداشت سوشا که انتشار اکس های خصوصی بوده جالب تر از همه بود تیتر خبر ورزشی حبس عکس عجب خب. خیل خب اینم از این داستان‌های و حواشی های سوشا از دیگه چه خبر از سایر ها؟ یه خبر آنچنانی از جودو بود که یه کارشناس یه راهکار جالبی ارائه کرده فرشید باسه درست شدن وضعیت فدراسیون جودو چی بوده راهکارش شاید به درد سایر فدراسیونام بخوره بخورم؟ شاید حالا میگم محمد کیهان تشکیفت جودو گفته به تسلیم گفته به خبرگزاری تسنیم اگر به دنبال تغییر اوضاع هستیم باید فدراسیون جدو رو بمبارون کنیم تا همه افرادی که الان دلش هستن دیگه نباشن همه چیز رو از نو بسازیم عجب بهترین راهکار من فکر کنم ای مایلی هم بشنوی این راهکارو واسه فدراسیون فوتبال هم پیشنهاد میدم اینو آره موقعی که کیروش <تصفح> ب... <تصفح> کفاشیو تو ت벌ه آخر اون بالا بالاها با هم جمع میگه بزنم بمبارون کنیم همه رو از بالا و پایین منفجر کنیم بره. ممنونم ازت فریدورس غریب بود خدافیزی می‌کنیم تا فردا تا فردا خدا نگهدار اما قبل از این که بریم سراغ آقا فری برز کمی از آلودگی سوتی و از بوغ و اینا گفتیم در مورد آلودگی بسری هم یکم حرف بزنیم تو خب دیگه با این حجم از آلودگی هوا آلودگی محیط زیست و آلودگی های دیگه شاید صحبت کردن از آلودگی های بسری آلودگی کم بگیم مثلا بگیم سو بازی و با اینا با خب آلودگیه دیگه برحال همه جای دنیا شهرسازی از یه سری قواعد و مثلا اصولی پیروی می‌کنه و هر کس حق, حق نداره مثلا هرجوری که اشخش کشید برای خودش خونه بسازه. اما ظاهراً ایران ما از این قاعده مستثناست. و از سر یه خیابون تا ته یه خیابون که می‌ری چهل جور سبک معماری مختلف می‌بینی. هیچ کدومیشون با اون یکی ربطی نداره. مثلا می‌ری می‌بینی یه خونه نمای آجری کار کرده، پنجرهای چوبی گذاشته، سه طبقه رفته بالا. بغلیش دو طبقه است، کلاً از پایین تا بالا ساختمانروش کرده با بغلیش یه طبقه سیمان سفید کار کرده پنجره‌ها رو هم برای خودش زو زنقه کار کرده خلاص آقا هر سازنده‌ای به سلیقه خودش یه چیزی ساخته رفته بالا و مجموعه این خونه‌های رنگ و بارنگ و قد و نیم قد در کنار هم شهر رو تشکیل دادن بعد شما حالا این مجموعه رو تصور کن یکی در میون توی بالکون‌ها و لبه پنجره‌هاش لباس‌های زیر و روی صاحبین این خونه‌ها دارن خودنمایی می‌کنن پیژامه راه راه و شورت و گلگلی و سوتین خال خال همجوری دارن با وزش باد کلاً تکون تکون می‌خورن این ون ون مقدار به خاطر بافت سنتی ایران خب حساسیت روی البسه زنونه خب بیشتر مردم خب سعی میکنن این لباس زنونه ها رو پشت مردونه ها و پشت شورت مردونه ها و پیجامه آقاشون و اینا بچینن کمتر در مرز دید باشه ولی خب آقا مردم آقا چه گناهی کردن هر طرف زر گردونن باید چنین این من مناظری ببینن نکنید نکنیم نکنند والا به خدا خوب نیست خود داشت. خود داشت. پیش روزنامه اعتماد به نقل از رئیس پجوشگده مطالعات استراتژیک خاورمیانه تیتر زده که باخت در منطقه سعودی ها را تهاجم می کرده است جلل الخالق تو ایران برادران حزب الله مثل قوم مغول ریختن تو سفارت خونا ها و آتیش زدن بعد میگن عربستان تهاجم می‌شده چی بگم روزنامه آرمان امروز با اشاره به گرایش جدید معتادان امروز تیتر زده که شیوه هروئین چینی در ایران این دون دی ملت چنا به خدا ما خودمون بهترین جنش و تو ایران داریم این جنش های شینی همش آشغال قاطی داره ایرانی جنش ایرانی بکش باباش کار و شرمایه ایرانی حمایت کن من واقعا فرجی بگو که چه سیاستی پشت این قضیه است که خودستان که آلو دیگه دائمی داره چرا هیچ وقت تعطیل نمیشه مگه مردم اونجا مردم نیستن بیا در این مورد بگوی چه سیاستی پشت این قضیه است مرسی بهار هستم از لندن حق با شماست آقای جان برنامه امروزمون هم تموم شد اما شاعر گفته آفتاب پرید رنگ هر روز نقب بزند به بین آسمان غبارآلود در پی بقایای تنت و خاطرهات که این خاک کنوز یادش هست همیشه یادش هست کجاست باران تا بشوید این قبار را از آینه از صورت این شهر و از چشمهای تو که شاید از پس تیرگی و قبار این روزها روزی قامت نگاه هامان برسد به روشنای فردا شبتون خوش و فرداهاتون تون روشن. دارم از سر زمین داغ دیدم از این خاک پر از پرواز وازمیگم هنوز زیر بارون کرول دارم از کربات میگم هوا هر روز بد از کند.